سلام وقتتون بخیر باشه من محسا حیاتی هستم با افتخار دانشجوی استاد رافع در زبان عربی یکی از مهمترین دقدقه های زندگی معنیم بود که آیا الفاظ عربی که میخونم درست میخونم و چه جایگاه این الفاظ دارند؟ اصلا جایگاه الفاظ در متن‌های عربی که میخونم درسته یا درست نیست پس همه مهمتر اون معنی فارسی که وجود داره با لفظ عربی با هم تطبیق داره یا نه تا اینکه تصمیم گرفتم هم زبان عربی رو یاد بگیرم زمانی که زبان عربی رو یاد گرفتم باشد شد که آگاهیم بیشتر بشه و با شناخت بیشتری و بهتری اون الفاظ عربی رو بخونم و یاد بگیرم مذیعت هایی که کلاس استاد رافع داره این هستش که شما ریشه کلمات رو متوجه میشید و البته میدونید کاربردش به چه صورته و با توجه به تمریناتی که استاد رافع میدن باعث میشه که زبان عربی هی براتون تکرار بشه و وارد حافظه بلند مدتتون بشه و واقعا من افتخار میکنم که در کلاس استاد رافع شرکت میکنم و سعی مهمتر زبان عربی رو دارم یاد میگیرم. فقط یه نکتهی بهتون بگم اینه که زبان عربی یاد بگیرین خوبه. اما از همه مهمتر اینکه با چه استادی یاد بگیرید این مهمتره. مرسی استاد رافه ممنونم که برای من وقت میذارین و دل سوزانه درس میدین ممنونم استاد. وقتتون بخیر.